قصه های هزار یک شب حکایت سیاد چون شب سوم برآمد آمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت سیادی سال خورده زنی با سه پسر داشت و بی و پریشان روزگار بود همه روز دام برگرفته به کنار دریا می رفت و چهار دفعه بیشتر دام در دریا نمیانداخت. روزی دام برداشته به کنار دریا شد دام در آب انداخته ساعتی به ایستاد پس از آن خواست که دام را بیرون آورد دید که سنگین است آنچه زور زد به در آوردن نتوانست در کنار دریا میخی کوفت دام فرو بست و خود در آب افتاد غوته خورد با توانایی تمام دام از آب به درآورد. دید که به دام اندر خریست مرده محضون گردید و گفت سبحان الله امروز عجب رزقی نصیب من شد پس دوباره دام در آب انداخت زمانی ایستاد چون خواست بیرونش آورد دید که سنگین تر از نخسته است گمان کرد که ماهی بزرگ است خود در آب فرو رفت به مشقت تمام بیرونش آورد دید که خمره بزرگ است پر از ریگ و گل چون این را به به حزنندر پیوسته گفت فیض ازل به زور و ضرر آمدی به دست آب خزر نصیبه اسکندر آمدی پس خمره را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت پس از زمانی دام بیرون کشیده که سفالی و شیشه ای به دامندر است این بیت برخاند که به جد و جه چو کاری نمی از پیش به کردگار رها کرده به مساله خیش پس از آن سر به سوی آسمان کرده گفت خداوندا من بیش از چهار دفعه دام در آب نمی اندازم به همین دفعه چهارم است پس نام خدا بر زبان رانده دام در آب انداخت پس از زمانی خواست بیرون آورد دید که بسی سنگین است بند دام را به میخ فرو بسته خود را به دریا انداخت به زور و توانایی دام را بیرون آورده دید که خمرهای است رویین که ارزیر بر سر آن ریخته به خاتم حضرت سلیمان علیه السلام مهرش کردهاند چون سیادین را به دید انبساط و نشاتش روی داد و با خود گفت که این سر بباید گشود پس کارت گرفته ار زیر از سر آن رو این خمره دور ساخت و آن را سرنگون کرده به جنبانیت که اگر چیزی در میان داشته باشد فرو ریزد دودی از آن خمره بیرون آمده به سوی آسمان رفت سیاد را عجب آمد و حیران همی بود تا آنکه دود در یک جا جمع شد و از میان دود افریتی به در آمد که سر به عبر میسود چون چون او را بدید از قایت بیم بلرزید و در دهانش به اما افریت چون سیاد را بدید به یگانگی خدا و پیغمبری سلیمان زبان گشوده گفت ای پیغمبر خدا مرا مکش پس از این سر از فرمان تو نپیچم سیاد گفت ای افرید اکنون آخر زمان است و سلیمان 1800 هشت سال است سپری شده. حکایت خیش بازگوی. چون افرید سخن سیاد بشنید گفت ای مرد آماده مرگ باش. سیاد گفت: سزای من که تو را از چنین زندان رها کردم این خواهد بود. افرید گفت: آری، تو را از مرگ چاره نیست. اکنون در خواه که تو را چگونه بکشم؟ سیاد گفت: گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم؟ افرید گفت: حکایت مرا بشنو. سیاد گفت: بازگوی و سخن دراز مکن که نزدیک است از بیم جان از تنم جدا شود. افریت گفت که من و سخرال جن سلیمان کرده به خدای او ایمان نیاوردیم. او وزیر خود آصف ابن را نزد من فرستاد. او مرا پیش سلیمان برد از من پرستش و فرمان برداری خواستند. من سرپیچی نمودم. همین خمره روین را بخواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرده با ارزیر سر آن را بین دود و مهر کرده فرمود مرا به دین دریا انداختند. هفتصد سال در قعر دریا بماندم و در دل داشتم که هر که مرا خلاص کند او را تا ابد از مال دنیا بینیاز گردانم کسی مرا از آن ورطه خلاص نکرد هفتصد سال دیگر بماندم با خود گفتم هر کی مرا رها کند گنجهای زمین را از بهر او بگشایم کسی مرا نرهاند چهارصد سال دیگر بماندم با خود گفتم هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد بکشم در این مقال بودم که تو مرا بیرون آورده مهر از خمره برداشتی اکنون بازگو که تو را چگونه بکشم چون سیادین را بشنید به حیرت اندر شد و بگریست و او را سوگند داده بخشایش تمنا کرد افریط گفت به جز کشته شدن چاره نداری چون سیاد مرگ را عیان بدید گفت ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی در شرط تو نبود که با من تو این کنی بر دوستی تو چه مرا اعتماد بود هرگز گمان نبردم بر تو که دشمنی افریت گفت در حیات مبند که به جز مرگ چاره نداری سیاد با خود گفت تو آدمی زاده هستی و این از جنیان است تو باید در که این تدبیری کنی پس به افریت گفت اکنون که مرا خواهی کشت تو را به نام خدای بزرگ سوگند میدهم که راست بگو که تو با این هیکل بزرگ در این خمره چطور جا گرفته بودی افرید گفت مگر تو را گمان این است که من به خمره اندر نبودم سیاد گفت تا ایان نبینم باور نکنم چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است